سلام، شما قسمت 16 همه پادکست علف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایش است اگر این پادکست رو دوست دارید شبکای اجتماعی اون با آدرس علف پادکست رو دنبال کنید و اگر دوست دارید در تولید پادکست سحیم باشید میتونید از طریق درگاه پیپینگ میتناید کس که آدرسش در توضیحات اپیزود هست از پادکست تمایت مالی کنید اما ای که تو این قسمت براتون روایت میکنم رویا در شب نیمه تابستان یا Midsummer Night's Dream اثر ویلیام شکسپیره در مورد خود شکسپیر قبلا تو اپیزود مکبس کم و بیش حرف زدیم. اگر دوست داشتید میتونید اپیزود دوازدهم پادکست رو گوش کنید. بعدش هم کلا سخته بخواید توی چند جمله و خیلی کوتاه درباره شکسپیر صحبت کنی. اما خود نمایشنامه رویا در شب نیمه تابستان یه نمایشنامه کومیدیه که سال 1595 و در سی سالگی شکسپیر نوشته شده و منتقدها بهش لقب اولین شاهکار شکسپیر رو دادن چون بین کارهای معروف و شاخص شکسپیر از همه زودتر منتشر شده داستان نمایشنامه تو آتن میگذره و شکسپیر بعضی از کاراکترها رو از اساتیر یونان قرض گرفته ولی این استفاده شکسپیر از ادبیات یونان فقط به اسامی و مکان نمایشنامه محدوده و نمایشنامه بیشتر انگلیس معاصر خود شکسپیر رو به تصویر کشیده. حالا درباره این اسامی و ارجاعات شکسپیر آخر اپیزود بیشتر صحبت می‌کنم. برای نوشتن متن این قسمت از دو تا ترجمه فارسی و متن اصلی نمایشنامه استفاده کردیم. ترجمه محضا محجوب و ترجمه مسعود فرزاد از انتشارات ناهید البته همین نسخه آقای فرزاد رو انتشارات علمی و فرهنگی هم چاپ کرده که تفاوتی با هم ندارن. ترجمه محسا محجوب ساده تره و خلاصه تره ولی ترجمه مسعود فرزاد خیلی دقیق تر و با توضیحات اضافه است. من خودم همین ترجمه دوم رو پیشنهاد میدم. متن این اپیزود رو با توجه به منابعی که گفتم محدیس سفری که قبلا سه تا اپیزود دیگه از الف رو نوشته بود نوشته بسیار بسیار سپاسگزارم. و در ضمن ما یک روش جدید برای روایت این نمایشنامه امتحان کردیم و تو این قسمت من توضیحات نمایشنامه رو با لحن آمیانه و روزمره خودمون براتون میخونم ولی دیالوگ ها رو با لحن خود نمایشنامه و متن ترجمه‌اش براتون میخونم اینم بگم که کلا نمایشنامه خیلی ساده تری نسبت به نمایشنامه کلاسیک قبلی که در پادکست سابق خوندیم به خاطر همین فکر می کنم خیلی زودتر باهاش ارتباط بگیرید همین سب بال بودن و این که این نمایشنامه امخ و پیچیدگی کارهای دیگر شکسپیر رو نداره یکی از دلایلی بود که این نمایشنامه رو بر این ماه فروردین و برای این روزهای اول سال انتخاب کردیم. پیوند اتفاقات این نمایشنامه با طبیعت، حضور پریها و جانر کمدی و لحظات رمانتیک این اثر باعث شده واقعا رویا در شب نیمه تابستان شبیه یک رویا به نظر بیاد و با حالت خلساوری که داره بهترین راه لذت بردن ازش اینه که چشماتون رو ببندید و اتفاقات نمایشنامه رو تصور کنید و دقایقاینده رو همراه این رویای شیرین بشید قبل از اینکه بریم سراغ خود نمایشنامه لازم یک نکته ای رو بگم که تو شنیدن نمایشنامه کمک میکنه تو نمایشنامه چند بار اسم کوپیت یا کیوپیت میاد من به خاطر اینکه کوپییت راحت طرح میگم کوپیت اگر یونا نمیدونید چیه یه پسر بچه کوچولو با موهای تلاییه که پسر ونوس و الهه‌ی عشق. البته تو اساطیر یونان اسمش اروسه و کلاً عجیبه با اینکه داستان توی آتن میگذره و شخصیت‌های یونانی هستن شکسپیر از اسم رومی این اساطیر استفاده میکنه. خلاصه کوپید اون بچه و الهه‌ی عشق و تو داستان‌ها اومده که یه کمان و دو تیر داره. نوک یک از این تیرها از جنس طلاس و وقتی به کسی بخوره طرف عاشق میشه. اینجا رو خوب یادتون بمونه و نکه تیر دیگه سربیه و وقتی به کسی بخوره اون طرف از عشق فارق میشه یه جایی هم در نمایشنامه اومده که کپید نابیناست این نمادی از اینه که عشق آدم و کور میکنه و این اعتقاد به نابینایی کپید از قرون وسطا پیدا شده و تو داستانهای اساطیری قدیم دیده نمیشه اسم دایانا هم فکر میکنم دو بار توی این اما میاد که این باز معادل رومی آرتمیس یونانیه که الهی باکره شکار و ماهه این الهه محافظ دختران جوان و باکر است و واسه همین راهبه ها به این الهه سوگند دوشیزگی یاد میکنند در آخر اینم بگم که من مثل همیشه سعی کردم اسامی رو به درست‌ترین شکل ادا کنم یا حداقل خیلی نزدیک به تلفظ درستشون. اگر اشتباهی دیدید، خطای من رو ببخشید و تذکر بدید. درباره خود نمایشنامه هم اگر نظری داشتید، برای من بنویسید. فکر می‌کنم توضیح دیگه قبل از شروع نمایشنامه لازم نباشه. توضیحات بیشتر رو می‌ذاریم برای آخر که زودتر بریم سراغ این دوست داشتنی ویلیام شکسپیر. رویا در شب نیمه تابستان.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 در تالار کاخی در شهر آتن، تیسیوس، دوک آتن و هیپولیتا، نامزد تیسیوس و ملکه آمازون ها که چیزی بر عروسیشون باقی نمونده، همراه با ملازمان وارد میشن. تیسیوس در واقع که از اساتیر یونان قدیمه. تیسیوس قهرمان آتن بوده و در یک جنگ هیپولیتا ملکه آمازون ها رو که یه قبیله از زنان قدرتمند و جنگجو بودن شکست میده، و هیپولیتا رو به آتن میاره تا باهاش ازدواج کنه در داستان های یونان اومده که آمازون ها به شدت از این قضیه خشمگین شدن و به آتن حمله کردن تا جشن رو به هم بزنن یه ورژن دیگه داستان هم میگه تیسیوس هیپولیتا رو رها میکنه تا با کس دیگه ای ازدواج کنه که هیپولیتا وقتی این رو میشنوه به آتن حمله میکنه و تو جنگ با تیسیوس کشته میشه البته اینجا خبری از این داستان ها نیست و تیسیوس و هیپولیتا خیلی هم خوشحال و خرم و عاشق منتظر عروسیشون هستند. تیسیوس میگه ای هیپولیتای زیبا روز عروسی ما به سرعت نزدیک می شود. چهار روز دیگر به خوشی خواهد گذشت و ماه نو فرا خواهد رسید. اما به نظر من این ماه کهنه بسیار کند می گذرد. به ام چنین می کند تا مرا از آرزویم باز دارد. هیپولیتا میگه این چهار روز به زودی در شب فرو خواهند رفت و این چهار شب به سرعت در خواب خوش به سر خواهد آمد. آنگاه ماه مانند کمانی سیمین از فراز آسمان به تماشای عروسی ما خواهد پرداخت. تیسیوس به یک از ملازمان دستور میده که جشن و پایکوبی رو در آتن از همین الان شروع کنند. برو و جوانان آتن را به شادمانی برانگیز، روح سرخوش نشات را در شهر بیدار کن و اندوه را به عذاب انشان که این حریف زرد روی شایستگی حضور در مراسم ما را ندارد بعد خطاب به هیپولیتا میگه هیپولیتا من برای این کشق تو را به خودم جلب کنم ناچار شدم از نیروی شمشیر خود استفاده کنم اما عروسی من با تو اینگونه نخواهد بود و با شکوه فراوان و سرور همگانی برگزار خواهد شد در این لحظه ایجیوس یا ایجیوس دخترش هرمییا، و دو مرد جوان، لایساندر و دیمیتریوس که هر دو عاشق هرمیا هستن، وارد می ایشیوس بعد از سلام و درود فرستادن به تیسیوس، دلیل اومدم به کاخ رو شهر میده. اکنون که به خدمت رسیدم، بسیار آشفته خاطر هستم و از دست دختر خیش هرمیا شکایت دارم. دیمیتریوس، پیش بیا. قربان، این مرد رضایت من رو برای ازدواج با هرمیا جلب کرده. لایساندر پیش بیا قربان این یکی مرد دل دختر مرا جادو کرده است تو ای لایساندر به دختر من اشعاری تقدیم کرده و با او هدایای عاشقانه رد و بدل ای در شبهای محتاب برای او تصنیفها ها خوانده ای و با حلقه موی خود و دستگلها گل ها و بازیچ ها دل او را دو ای و دختر مرا که باید نسبت به من فرمان بردار باشد در برابر من لجوج و سرکش ساخته ای اینک قربان تقاضا دارم اجازه بفرمایید با این دختر که از آن من است مطابق حق کوهن آتنی ها رفتار کنم یعنی هرمیا یا باید با دیمیتریوس ازدواج کند یا محکوم به مرگ شود. تیسیوس رو میکنه به هرمییا و نظر اون رو میپرسه. هرمیای زیبا چه میگوید؟ متوجه باشید که پدر شما خدای شماست اوست که زیبایی های شما را پدید آورده. شما در برابر او مانند پیکری مومی هستید که او آن را ساخته و شکل داده از طرف دیگر دیمیتریوس مرد شایسته است. هرمیا جواب میده که لایساندر هم شایسته است تیسیوس میگه بله شخصاً چنین است اما چون موافقت پدرتان را جلب نکرده است باید با دیمیتریوس ازدواج کنید و او را شایسته تر بشمورید هرمیا میگه قربان استدعا دارم مرا عفو بفرمایید. نمیدانم چه روی این جسارت را به من میبخشد تا بدون شرم افکارم را با شما در میان بگذارم اما استدعا می کنم بگویید اگر من از ازدواج با دیمیتریوس خودداری کنم بدترین بلایی که به سرم می چیست؟ تیسیوس میگه یا مرگ یا اجتناب ابدی از معاشرت با مردان ای هرمیای زیبا از خود بپرسید آیا اگر به انتخاب پدرتان رضایت ندهید میتوانید تا ابد لباس تارکین دنیا را به تنگ کنید و تمام وقت خود را در یک صومعه تاریک بگذرانید مبارکند کسانی که چنان به شهوت خود غالب میشوند و قید بکارت دائم را بر خود هموار میکنند اما گلی که از آن گلاب گرفته میشود از گلی مبارک که تنها میروید و تنها میزییت از سعادت زمینی بیشتری بهره مند خواهد شد هرمیا میگه قربان من خوشتر دارم که همین طور زندگی کنم و بمیرم تا اینکه گوهر دوشیزگی خود را تقدیم کسی کنم که روح من از تسلیم در برابرش خوشنود نباشد. تیسیوس میگه بهتر هرمیا اجولانه تصمیم نگیره و سه روز بهش وقت میده تا در روز عروسی خودش و هیپولیتا تصمیم نهاییش رو اعلام کنه. در روزی که مصاحبت دائم بین من و مشوقم مسجل گشت، آماده باشید که یا به خاطر سرکشی از فرمان پدرتان بمیرید یا به میل او با دیمیتریوس ازدواج کنید یا در برابر دیانا سوگند ریاضت و تجرد ابدی یاد کنید. دیمیتریوس اینجا وارد بحث میشه و از هرمیاد تقاضا میکنه که نظرش رو عوض کنه و از لایساندر هم میخواد از ادعای خودش دست بکشه. لایساندر میگه دیمیتریوس شما محبت پدر هرمیان را جلب کرده اید و من محبت خود هرمیان را. خب شما با پدرش ازدواج کنید. ایجیوس خشمگین میگه که درست است ای لایساندر گستاخ. دیمیتریوس محبت مرا جلب کرده و من به دلیل این محبت چیزی که ازان من است را به او خواهم داد. هرمیان ازان من است و من تمام حقی که بر او دارم را به دیمیتریوس وا میگذارم. لایساندر میگه قربان. اصل و نصب من به خوبی اوست دارایی من هم به اندازه اوست اما عشق من بر او می چربد. مقام من از هر جهت با مقام او برابر بلکه حتی بهتر است بالاتر از تمام اینها هرمیا مرا دوست دارد پس چرا من برای احقاق حق خود نکوشم؟ در زم دیمیتریوس قبلا به هلنا دختر نیدار اظهار عشق کرده و آن دوشیزه زیبا اکنون از جان و دل این مرد ننگین و بیوفا را می پرستد تیسیوس هم تاکید میکنه که چنین چیزی شنیده و میخواسته در مورد این مسئله با دیمیتریوس صحبت کنه. بعد از دیمیتریوس و ایجیوس میخواد همراهش برن تا در مورد چند مسئله مهم صحبت و مشورت کنن. ایجیوس، دیمیتریوس، تیسیوس و هیپولیتا بیرون میرن و لایساندر و هرمیا تنها میمونن. لایساندر میگه ای عشق من، چرا چهرهت چنین زرد شده؟ چرا گل‌هایی که بر داشتی به این زودی پژمردند؟ هرمییا میگه شاید چون بی آب موندند. اما من در چشمان خود طوفانی دارم که میتواند در یک چشم به هم زدن آنها را سیراب کند. لایساندر میگه در هر چه ام هم و همه افسانه ها و سرنوشت هایی که شنیده ام راه عشق حقیقی هرگز هموار نبوده. همیشه میان عاشق و معشوق یا تفاوت خانوادگی بوده یا از حیث سن مناسب هم نبودند یا این انتخاب مورد پسند دوستان واقع نشده است. هرمیا میگه اشقی که انسان مجبور باشد آن را از دریچه چشم دیگران انتخاب کند دوزخ است. اما حرفای لایساندر بهش امید میده و حالش رو بهتر کرده. ادامه میده. پس اگر آشقان همباره به مشکل برخوردن، این مشکلات مثل رویاها و عشق و آه جزء جدایی ناپذیر از اشق است. لایساندر هم موافقت میکنه و برای حل مشکلشون راهی در ذهن داره. گوش کن هرمیا. من یک خاله پیر دارم که هفت فرسنگ بیرون از آتن زندگی می کند و مرا مانند فرزند خیش می داند. من میتوانم آنجا با تو ازدواج کنم زیرا قانون سخت آتن آنجا گریبانگیر ما نیست. فرداشب در جنگل همان جایی که یک بار تو و هلنا را ملاقات کردم و روز اول ماه ای را جشن گرفتیم منتظرت خواهم بود. اگر مرا دوست داری با آنجا بیا. هرمیا می گه عزیز. به کمان کوپید و نوک زرین تیر او سوگند، به آنچه روحها را به هم پیوند می دهد و عشقها را می سوگند، به همه سوگندهایی که مردان شکستند و شمار آنها از شمار سوگندهایی که زنان یاد کردند بیشتر است، من فردا شب همان جایی که تو معین کرده ای به دیدارت خواهم آمد. اینجا هلنا از در وارد میشه. چون اسم شبیه هرمیاس نباید قاطیشون کنیم. حواسمون باشه. هلنا همون دختر نیداره که دیمیتریوس قبل از هرمییا بهش اسار عشق کرده بود و هلنا هم به خاطر همین الان عاشق دیمیتریوسه. در زم هلنا و هرمییا از بچگی با هم دوست بودن. اما چون دیمیتریوس عاشق هرمییا شده، رابطه شون به هم خورده. یه جنبندی بکنیم. الان پس یه هلنا داریم که عاشق دیمیتریوسه، یه هرمییا داریم که عاشق لایساندره و لایساندر و دیمیتریوس جفتشون عاشق هرمیای بعد از وارد شدن هلنا هرمیا میگه درود بر توهای هلنای زیبا با این شتاب به کجا میرو؟ هلنا میگه مرا زیبا میخوانی این زیبا را پس بگیر دیمیتریوس زیبایی تو را دوست دارد چشمانت مانند ستارهاند و صدایت از آواز ترنگ شیرین تر است کاش زیبایی هم مانند بیماری مصری بود در آن صورت زیبایی تو به من سرایت میکرد و زبان من صدای شیرین تو را می گرفت. اگر دنیا ازان من بود همه را به تو میدادم و دیمیتریوس را برای خود نگه میداشتم آه به من یاد بده چطور نگاه میکنی و چطور به قلب دیمیتریوس نفوذ کردی؟ هرمیا میگه من به او اخ می میکنم اما او باز هم مرا دوست دارد هلنا میگه کاش اخم تو هنر خود را به لبخند من میآموخت هرمیا میگه هرچه بیشتر او را ترت می میکنم بیشتر مرا دوست دارد و هلنا میگه هرچه بیشتر او را دوست دارم بیشتر مرا ترت می کنند. هرمیا میگه هلنا، حماقت او گناه من نیست و بعد خبر خوبی به هلنا میده. به هر جهت آسوده باش. او دیگر مرا نخواهد دید. من و لایساندر قصد داریم از اینجا بگریزیم. قبل از ملاقات با لایساندر، آتن در نظر من به بهش میماند. اما نمیدانم عشق چه نیرویی دارد که بهشت را به دوزخ تبدیل می کند و در جنگل جایی که من و تو در بستر گلهای بهاری می و دلهامان را از راستها توهی می کردیم، من و لایساندر امشب همانجا ملاقات خواهیم کرد. خدا نگهداره هم بازی دوران کودکی. برای ما دعا کن. من هم دعا می بخت با تو یار باشد و دیمیتریوست را به تو عطا کنند. بعد از گفتن این حرفا با بیرون میره. هلنا فکر میکنه چقدر بعضی ها از بقیه خوشبختتر هستند. همه در سراسر آتم مرا به زیبایی هرمیا میدانند. اما چه سود؟ دیمیتریوس اینگونه فکر نمی کند. من او را به خطا میپرستم، همانطور که او به خطا هرمیا را میپرستد. عشق میتواند چیزهای پست و کوچک را دارای وزن و اهمیت کند. عشق نه چشم، بلکه با ذهن میبیند. برای همین هم کوپیت را نابینا میکشند داشتن بال و نداشتن چشم نشان از شتاب زدگی و بیخردی عشق است. اما برای همین عشق را به کودک تشبیه می چون بارها و بارها در انتخابهای خود فریب می خورد. پیش از آن که دیمیتریوس هرمیا را ببیند سوگند می خورد مال است اما تا گرمای وجود هرمیا به او خورد تمام سوگندها آب شد. اینجاست که فکری به ذهن هلنا میرسه من او را از گریز هرمیا آگاه می کنم. او هم به دنبال هرمیا می رود. حتی اگر بابت این اطلاعات از من ممنون شود باز این کار برای من بسیار گران تمام خواهد شد اما باز هم میخوام همین زمان را به دنبال هرمییا همراه او بروم و بازگردم حتی اگر رنجم سنگین تر شود گروهی از صنعتگران شهر آتن که یک گروه تئاتر هم دارند وارد خونه پیتر کوینز نجار میشن که سرپرست و به اصطلاح کارگردان گروه نمایشه این صعتگرا قصد دارند برای عروسی تیسیوس و هیپولیتا نمایش یاماده کنند. کوینز میخواد همه بازیگر رو جمع بشن. نیکباتم بافنده پیشنهاد میده کوینز اول نمایش رو معرفی کنه و بعد نقش ها رو تقسیم کنه. کوینز میگه بسیار خوب. نمایشی که قرار است اجرا کنیم غمناک ترین کمدی و داستان سهمگین ترین مرگ پیراموس و تزبیست. باتم تو باید نقش پیراموس را بازی کنی. باتم میپرسه پیراموس کیست عاشق است یا پهلوان؟ کوینز جواب میده عاشقی است که خود را به خاطر عشق میکشد باتم میگه پس اگر خوب اجرا شود گریه آور خواهد بود اگر من بازی کنم مردم نمیتوانند جلوی اشکهایشان را بگیرند کولاک میکنم و همه را متأثیر می میکنم ترجیح میدادم پهلوان باشم مثلا هرکل خیلی عالی بود نقش پهلوانان بهتر است نقش عاشق بیشتر مورد ترخیم است. به هر حال، بقیه این نقش را بگو. اینجا این سنتگران هم توی نمایشی که اجرا میکنم و هم توی حرف زدن آدیشون اشتباه زیاد دارن. چه توی گفتن اسامی، چه توی گفتن کلمات. پس اگر کلمه ای رو اشتباه میگم، دارن در واقع شخصیت ها اون رو اشتباه ادام می کنن. ادامه میکنن. کوئینز ادامه میده. فرانسیس فلوت آهنگر تو در نقش تیزبی هستی که معشوقی پیرامونست. فلوتا ترAZ میکنه. اما من که نمیتوانم نقش یک زن را بازی کنم. نگاه کن من ریش دارم. باتم میگه بگذار من نقش تیزبی را بازی کنم. من با صدای بسیار ملایمی سخن میگویم. تیزبی؟ تیزبی؟ آه پیراموس بله منم بانوی تو. کوینز مخالفت میکنه و میگه باتم حتما باید پیراموس باشه و فلوت تیزبی. بعد هم به بقیه نقش پدر پیراموس، پدر تیزبی و به اسناک قابساز هم نقش شیر رو میده اسناک میگه آیا نقش شیر را همراهت داری؟ لطفا آن را به من بده چون من در یادگیری کند هستم کوینز با حیرت میگه اما تو فقط باید قرش کنی با باز میپره وسط بگذار نقش شیر را هم من بازی کنم گررش من قلب هر انسانی را به لرزه در می آورد کوینز میگه اما تو خانمها را می ترسانی. همین کافی خواهد بود تا ما را به دار بیاویزند. باتم میگه بله دوستان من. اگر شما خانمها را بترسانید ترسانید ما را به دار می اما من به آرامی مثل یک کبوتر قررش می کنم. مثل بلبل قررش می کنم. <تصفيق> کوینز دوباره تأکید می کنه که باتم باید نقش پیراموس رو بازی کنه بعد برای فردا شب قرار تمرین می و همگی از در خارج میشن. Music در جنگلی در نزدیکی آتن یک پری و یک پاک به هم می‌رسند. پاک در داستان‌های فولکلور انگلستان به عنوان یک جن مردمانزار و زیرک ولی خوش قلب اومده یعنی اسمش خاص نیست و اسم یک نوع جن. پاک میگه درود ای پری به کجا میروی پری با صدای آهنگین میگه روی تپه و دره میان گلبنها و خاربنها میان آب و آتش دور ماه میگردم و خدمتگزار ملکه پریان هستم روی حلقه های چمن شبتم های او را میگذارم روی جامعه طلایی گلها یاقوت هایی نشسته که پریان آنها را به گلها بخشیدند و عطر خوش گلها نیز از همان یاقوت هاست اکنون من باید بروم و از گوش هر گلبرگ مرواریدی بیاویزم زیرا ملکه ما امشب با پریانش به اینجا خواهد آمد پاک میگه اوبران پادشاه پریان نیز امشب اینجا میهمانی میدهد چشم او نباید به ملکه بیفتد، زیرا اوبران بسیار خشمگین است. ملکه کودکی زیبا از هند و زیده و او را ملازم خود کرده است. اما اوبران حسود میخواهد پسرک از آن او باشد. ملکه هم از دادن پسر امتنا می کند. از همین رو هر وقت پادشاه و ملکه یکدیگر را ملاقات می کنند. سر این پسرک دعوایشان می شود. و همه پریان از وحشت داخل میوه بلوط میجهند پری میگه اگر اشتباه نکنم شما باید پاک باشید شما همان جن زیرکی هستید که دوشیزگان را میترساند سرشیر را از ظرف میدزدد و گندم‌ها را به هم میریزد پاک میگه بله درست است خودم هستم برای ابران شوخی میکنم و او را میخندانم گاهی پیرزن‌های خردمند و قصه مرا با چهار پای اشتباه می‌گیرند و من از زیرشان می‌خزم و آنها بر زمین میفتن و همه هزار قاه قاه می خندن ای وای اوبران دارد میآید. پری می‌گه بانوی من هم دارد میآید کاش اوبران پیدایش نشده بود از یک طرف تیتانیا ملکه پریان و از طرف دیگه اوبران پادشاه پریان وارد میشن اوبران میگه تیتانیای مغرور دیدار تو موجب خرسندی نیست تیتانیا هم میگه توی ابران حسود؟ ای پریان بشه از اینجا برویم که من از او گریزانم. اوبران میگه صبر کن ای بی شرم مگر من آقای تو نیستم. تیتانیا میگه پس من هم باید بانوی تو باشم. اما فکر میکنی خبر ندارم خودت را به شکل دهقانی جوان در میآوری و برای دختران جوان آوازهای آشقانه میخواهی؟ چرا از دشتهای وسیع هندوستان به اینجا آمدی؟ به خاطر اینکه هیپولیتا ملکه ای آمازون ها معشوق قدیمی توست که آمده با تیسیوس عروسی کند آمده برایشان آرزوی شادی کنی؟ اوبران میگه ای تیتانیای بی رو. چطور رویت میشود در باری روابط محترمانه و آبرومند من و هیپولیتا چنین سخنانی بر زبان بیاوری؟ آن هم در حالی که خود تو عاشق تیسیوس هستی مگر تو را وادار نکردی عهد خود را با زنان بسیاری بشکند تیتانیا میگه اینها همه دروغایی است که از روی حسادت ساخته ای از آغاز نیمه تابستان روزی نبوده که من و پریانم با خیال آسوده روی تپه و چمن در ها و رودها گرد هم آییم و با نقمه باد به رقص دراییم تو با مزاحمت‌های خود آسایش ما را بر هم بادها هم که دیدند آواز خواندن برای ما فایده ندارد خشمگین شدن و مه دریا را مکیدند و روی زمین رها کردند رودخانه های ناچیز را چنان مغرور گرداندند که خروشیدند و سواحل خود را زیر آب گرفتند مزارع پوسیدند و زحمت و عرق ریزی دهقانان هیچ و پوچ شد فصلها بر اثر این آشفتگی تغییر کردند و با هم مخلوط شدند گل زیبای بهاری در میان یخ و برف شکوفه می دهند. دنیا از دیدن این جابجایی ها حیران مانده و نمیداند کدام فصل است و همه این تیر روزی ها بر اثر بحث و دعوای ما پدید آمد. اوبران میگه، پس می‌خوای جبران کنی؟ کلید این کار در دست توست. پسرک را به من بده تا همه چیز با حالت عادی خود بازگردد. تیتانیا با آرامش میگه، مادر این پسرک دوست عزیز من بود. چه شبها که در هوای پر عطر هندوستان با هم به صحبت میپرداختیم. و تاجران و بازرگانان را روی کشتی ها تماشا می کردیم اما افسوس که او فانی بود و سر زایمان همین پسر از دنیا رفت به خاطر او من این پسر را بزرگ می کنم و او را از خود جدا نمی کنم حال اگر می خواهی با ما برقصی و در پرتوی سیمین محتاب با ما شاد باشی همراه ما بیا وگرنه از من دور شو و من نیز از تو دور می مانم اوبران می گه آن پسر را به من بده تا با تو بیایم تیتانیا میگه خیالت راحت اگر تمام سرزمین پریان را هم به من بدهی باز این کار را نخواهم کرد بعد خطاب به همراهانش میگه ای پریان برویم که اگر بیشتر بمانیم کار من و اوبران به جنگ میکشد و بعد با همراهانش بیرون میره اوبران خشمگین تو فکر راهی برای شکست دادن تیتانیاست پاک رو صدا میکنه و داستان رو براش تعریف میکنه شبی که در سخره نزدیک دریا نشسته بودم، صدای پری دریایی را شنیدم. او چنان دلنشین آواز می که دریای خروشان رام شد و ستارگان برای شنیدن آوازش از مدار خود بیرون آمدند. همان زمان دیدم که کپید تمام مسلح تیر زرین خود را به سوی آن پری روانه کرد. اما تیر در پرتوی مرتوب ماه نغرهی خاموش شد و به خطا رفت. دیدم که آن تیر بر قلب گلی سفید فرود آمد. و آن گل از زخم این تیر به رنگ ارغوان درآمد. آن گل را مهرگل می‌نامند. وقتی شیره آن را بر چشم کسی بمالی، او دیوانه وار عاشق اولین موجود زنده‌ای که ببیند خواهد شد. برو کمی از آن گل را پیدا کن و خیلی زود برای من بیاور. پاک اطمینان می‌ده اونقدر سرعتش زیاده که در چهل دقیقه دور زمین کمربند ببنده و با سرعت بیرون میره. ابران با خودش نخشه می‌کشه. شیره آنگل را بر چشمهای خفته تیتانیا خواهم مالید و او عاشق اولین موجودی که ببیند خواهد شد خواه خرس باشد یا میمون آن وقت او را مجبور میکنم پسرک را به من بدهد و بعد تلسم را باطل خواهم کرد صدای پا میاد و که نامریه یه گوشه میسته تا ببینه کیه که به این سمت میاد دیمیتریوس وارد میشه و هلنا به دنبالش دیمیتریوس میگه من تو را دوست ندارم دنبالم نیا لایساندر و هرمیای زیبای من کجا هستند هلنا گفتم برو و دنبال من نیا هلنا میگه تو مرا مانند آهنربا به سمت خود میکشی از قدرت خود دست بکش تا من نیز به دنبال تو نیایم دیمیتریوس میگه من تو را فریب دادم آیا با ملایمت با تو سخن گفتم من تو را دوست ندارم و نمیتوانم دوست داشته باشم هلنا میگه برای همین من تو را بیشتر از قبل دوست دارم. هر طور می خواهی با من رفتار کن. دیمیتریوس فقط اجازه بده همینطور که برایت ارزش هستم دنبال تو بیایم اجازه بده سگ تو باشم. دیمیتریوس میگه چطور می توانی در پی کسی باشی که دوستت ندارد؟ از چ با این مکان متروک نمیترسی؟ هلنا میگه؟ شبی که بتوانم چهره تو را ببینم برای من مانند روز روشن می‌شود و این جنگل هم خالی نیست زیرا تو برای من دنیای یز آدم هستی چطور میتوان گفت من تنها هستم وقتی همه دنیا اینجاست و مرا مینگرد. دیمیتریوس میگه من توی بوته ها و بیشه‌ها پنهان خواهم شد و تو را میان جانوران وحشی رها خواهم کرد اگر باز هم به دنبال من بیایی به تو آسیب خواهم رساند هلنا میگه وحشی ترین درنده نیز از تو قلب مهربانتری دارد من داستان را معکوس می کنم گوزن به دنبال ببر می رود. اما وقتی شجاعت می گریزد، ترس هرقدر هم که به دنبال آن بشه سودی ندارد بله دیمیتریوس تو نه تنها در جنگل بلکه در میان شهر و در میان بازار و معبد نیز به من آسیب ما زنان نمی توانیم مانند مردم برای اشقمان بجنگیم. ما ساخته شده ایم تا معشوق باشیم. دیمیتریوس بی توجه به این حرفها میذاره میره. هلنا میگه من به دنبالت میآیم و از جهنم بهشت میسازم. زیرا کاری میکنم تا به دست کسی که این همه دوستش دارم کشته شوم. بعد از گفتن این حرفها را میفته و دنبال دیمیتریوس میره. اوبران که این گفتگو رو شنیده پیش خودش میگه برو ای دختر زیبا قبل از اینکه این که دیمیتریوس این بیشه را ترک کند. تو میگوریزی و این اوست که خواستار عشق توست. پاک برمیگرده و گلی که دنبالش رفته بود رو همراه خودش آورده ابران میگه رودخانه ای را می شناسم که بر ساحلش آویشن و گل همیشه بهار رویده و گل مشکن نسترن بر فراز آن چتر بزرگ و زیبایی ساختن تیتانیا خسته از رقص و پایکوبی میان این گلها میارامد شیره گل را به چشمانش خواهم مالید تو مقداری از این گل را بردار و در این بیشه جستجو کن. بانوی زیبایی عاشق یک جوان مغرور آتنی است. این شیه را به چشمان آن جوان بمال و مطمئن شو اولین کسی که او میبیند همین دختر زیبا باشد. او را از لباسهای آتنی که بر تن دارد خواهی شناخت. در قسمت دیگری از جنگل، تیتانیا دراز کشیده و پریان براش لالایی میخونند. تیتانیا به خواب میره و پریان هم ملکه رو تنها میذارن که در آرامش بخوابه اوبران سرکی میکشه و وقتی میبینه همه چیز امن و امانه میاد جلو و گل رو فشار میده تا شیرش روی چشم تیتانیا بریزه آروم زمزمه میکنه آنچه هنگام بیدار شدن میبینی به عنوان عشق حقیقی خود میپذیری چه خوک باشد چه پلنگ و خرز او در نظر تو زیباترین خواهد بود. بعد از گفتن اینا پاورچین دور میشه و تیتانیا رو تنها میذاره. لایساندر و هرمیا وارد میشن. لایساندر میگه ای معشوق زیبا تو از سرگردانی در جنگل خسته شده ای و گمان میکنم راه خود را گم کرده ای. اگر مناسب میدانی اینجا استراحت کنیم و منتظر نور روز شویم. هرمیا میگه خب لایساندر عزیزم. برای خود جایی پیدا کن چون من میخواهم همینجا بخوابم لایساندر میگه خب اونم میخواد همونجا بخوابه و خطایی ازش سر نمیزنه اما هرمییا میگه به حرمت عشق کمی دورتر بخواب شب به خیر دوست نازنین باشد که عشق ما تا پایان عمر تغییر نکند لایساندر میگه اگر روزی پایان عشق من باشد آن روز پایان عمر من خواهد بود دو عاشق به هم شب به خیر و, و... با فاصله هست هم میخوابن کمی بعد پاک وارد میشه پاک کل جنگل رو گشته اما جوان آتنیک دختر زیبایی عاشقش رو پیدا نکرده به اینجا که میرسه چشمش به لایساندر و هرمیا میفته او چه کسی اینجاست او لباس آتنی به تن دارد این همان هم مردی است که ارباب گفته دختر زیبا و بیچاره جرعت نکرده نزدیک این مرد سنگدل و آری از عشق بخوابد. شیره گل رو به چشم لایساندر میماله و میگه اکنون تمام قدرت این افسون را به چشم تو میریزم باشد که وقتی بیدار شوی دیگر عشق نگذارد بخوابی و زود میره تا به خدمت اربابش برسه گوشه دیگه از جنگل دیمیتریوس و هلنا وارد میشن دیمیتریوس هنوزم سعی میکنه هلنا رو از خودش برونه دیمیتریوس میره و هلنا که از این تعقیب و گوریس خسته شده، میسته تا نفسی تازه کنه که چشمش به لایساندر میفته. اما هرمیا که کمی دورتره رو نمی‌بینه. اول فکر می‌کنه دیمیتریوس لایساندر رو کشته. بعد متوجه میشه اثری از زخم نیست. لایساندر رو صدا میزنه. لایساندر؟ لایساندر؟ اگر زنده ای برخیست. لایساندر بیدار میشه و چشمش به هلنا میفته. من آمادم تا به خاطر تو از آتش بگذرم آه، آهی هلنای عزیزم دیمیتریوس کجاست؟ اه چه نام پلیدی او باید به دست من هلاک شود هلنا میگه این حرف را نزن لایساندر چه اهمیتی دارد که دیمیتریوس هرمیای تو را دوست دارد هرمیا عاشق توست پس خوشحال باش لایساندر میگه به خاطر هرمیا خوشحال باشم حال برای تمام دقایق خسته کننده ای که با او گذراندم متاسفم. مناشق عاشق نیستم، بلکه هلنا را دوست دارم. کیست که کلاغ را با کبوتر معاوضه نکنند؟ اراده بشر مطیع عقل است و عقل میگوید تو از هر جهت شایسته تر هستی. عقل من هنوز به بلوغ خود نرسیده بود، اما حالا میفهمم و عقل مرا به سمت چشمان زیبای تو میکشاند. که در آن زیباترین ترین داستانهای عشق نوشته شده. هلنا میگه چرا این گونه مرا به تمسخور گرفته ای؟ چه کار کردم که سزاوار چنین تحقیری شدم؟ آیا کافی نیست که من شایستگی این را ندارم و نخواهم داشت که دیمیتریوس نگاه پرمهری بر من بیافگند؟ دیگر چه لزومی دارد تو نیز مرا به باد تمسخور بگیری؟ باید بگویم که تو را بزرگ بارتر از این میپنداشتم و بعد با ناراحتی میره؟ لایساندر میگه هرمیا تو همینجا بخواب و دیگر نزد من نیا. افراد در گواراترین چیزها هم نفرت عظیمی از آن در دل پدید می آورد. بیشترین نفرت نسبت به یک عقیده منسوخ شده را کسانی ابراز می‌دارند که بیشتر از همه از آن فریب خوردن. تو نیست همینطور هستی هرمیا. من دیگر از تو بیزارم. تو نزد من از همه منفورتری و من میخواهم مرد هلنا باشم. بعد اونم؟ بیرون میره هرمیا در خواب تکوم میخوره انگار داره کابوس میبینه کمکم کن کمکم کن لایساندر این مار ملعون رو از سینه من بردار بعد با ترس از خواب بیدار میشه وای بر من چه خواب بدی دیدم لایساندر عزیز خواب میدیدم که ماری قلب مرا میخورد و تو بدون اینکه کاری بکنی به من لبخند میزنی تازه اینجاست که متوجه میشه لایساندر اونجا نیست و رفته عجب پس او کجاست؟ لایساندر لایساندر من دارم از ترس بیهوش می شدم. من باید تو را پیدا کنم وگرنه زنده نخواهم ماند روح تاعتر صنعتگران وارد قسمتی از جنگل میشن که تیتانیا اونجا خوابه. طبیعتاً چون تیتانیا نامرئیه متوجهش نمیشن. بازیگران دارن حاضر میشن تا تمرین رو شروع کنن که با تم میگه کوینز، چیزهایی در این نمایش وجود دارد که قابل اجرا نیست. مثلا پیراموس باید شمشیرش را بکشد تا خود را بکشد. خانم ها توانند چنین چیزی ببینند. نظرتان چیست ستار یکی از بازیگران میگه باید از کشتن پیراموس سرف نظر کنیم. باتم سرشو به شدت تکم میده. به هیچ وجه به هیچ وجه نقشهی دارم که کارمان را راه بیاندازد. مقدمه برای من بنویسید و بگویید ما با شمشیرهایمان هیچ زخم حقیقی نخواهیم زد و پیراموس واقعا کشته نشده. محض می میتوانیم بگوییم من پیراموس نیستم بلکه باتم بافنده هستم این باعث می شود کسی نترسد. کوینز با نوشتن مقدمه موافقت میکنه اسناک که قرار نقش شیر رو بازی کنه میگه خانم ها از شیر نمی حرسند باتم می میگه معلوم است که می حراسند. آوردن یک شیر میان خانم ها کار خیلی محیبی است. اسناک میگه پس باید مقدمه دیگری هم بنویسیم و بگوییم شیر هم یک شیر واقعی نیست. باته میگه نخیر این کار کافی نیست، باید نام او ببریم، و نیمی از صورتش نیز باید از پشت گردن شیر پیدا باشد. خود او هم باید بگوید: خانم‌های زیبا، استدعا دارم نترسید. اگر خیال کنید من شیر هستم و از ترس بلرزید، جان من در عذاب خواهد بود. من به هیچ وجه شیر نیستم، بلکه انسان هستم. من سناگ قابساز هستم. کوینز با این هم موافقت میکنه و میگه: هنوز دو مشکل دیگر باقی است. اول این که محتاب را چگونه به اتاق بیاوریم؟ همانطور که میدانید پیراموس و تیزبی زیر نور ماه با یکدیگر ملاقات می کنند. میگه باید پنجره را باز بگذاریم تا نور ماه روی صحنه بیفتد. کوینز میگه یا اینکه کسی میتواند در نقش ماه لباس بپوشد. مشکل دوم این است که ما نیاز به یک دیوار داریم زیرا پیراموس و تیزبی از سوراخ یک دیوار با هم صحبت می کند. باطم میگه یکی از ما باید نقش دیوار را بازی کند. او میتواند گچ و کاهگل بر سر بریزد تا نشان دهد دیوار است. انگشتان خود را رانیز اینگونه نگه میدارد که گویی شکاف دیوار است و پیراموس و تیزبی از آن سوراخ با هم نجوا می کنند. کوینز که میبینه همه مشکلات حل شدند میخواد تمرین رو شروع کنه. داره به همه نقش ها و کارهایی که باید بکنن رو میگه که پاک وارد میشه. پاک با خودش میگه این درغک ها دیگر کیستن؟ آن هم در نزدیکی بستر ملکه پریان. او نمایش. من هم گوش میدهم و اگر دلم خواست بازیگر نیز میشوم. باتم در نقش پیراموس میگه آهی تیز بیه عزیزم. گلها دارای عطر خوش و متعفنی هستند. کوینس میگه معتر. معتر. باتم در نقش پیراموس میگه خوش و معتری هستن. نفستو نیز همینقدر خوش خوشعتر است. اما گوش بده. صدایی می شنبم. منتظر شد تا برگردم. بیرون میره. پاک با خودش فکر میکنه تا حالا هیچ پیراموسی از این عجیبتر وجود نداشته و اونم دنبال باتم بیرون میره. فلوت در نقش تیزبی میگه ای درخشانترین پیراموس ای که رخ تو مانند سفیدترین سوسن است ای جوان چالاک. ای گوهر محبوب ای که مانند اصیلترین اسب ها نجیبی من در کنار مقبره نینی به تو ملحق می شوم کوینز عصبانی شده و میگه مقبره نینوس نه نینی تازه این بخش را الان نباید بگویی تو همه دیالوگ های خود را یک باره تمام کردی پیراموس تو نیز وارد شو با جمله ترین از پا باید وایرس شوی. پاک قبل از باتم میگرده و باتم در حالی میاد پیش دوستانش که سر خری جای سرشه. این شوخی خیلی شوهرمه پاک با باطمه. کوینز ترسیده و تجرب کرده. این دیگر چه چیز مهیبی است؟ اینجا جن دارد آقایان، بگریزید. آهای، به دادمان برسید. همه ی گروه وحشت زده فرار می کنند. باتم که متوجه چیزی نشده فکر می کنه دوستاش دارن سر به سرش می زارن. با خودش فکر می کنه حقشان را فهمیدم. می خواهند مرا بترسانند اما نمی توانند. من از اینجا تکان نمی خورم و شروع می کنه به آواز خوندن و چرخیدن در جنگل. تیتانیا از صدای باتم بیدار می شه. کدام فرشته مرا از بستر گل برکا بیدار کرد؟ باتم همچنان داره آواز میخونه تیتانیا که شیره گلی که اوبران به چشمش مالیده بود باز شده عاشق باتم بشه میگه ای فانی مهربان باز هم بخوان گوش من سخت عاشق صدای زیبای توست و چشم من مپوت رخ زیبای تو سوگند یاد میکنم که در نگاه اول عاشق تو شدم باتم میگه فکر میکنم برای این دلیل معقولی ندارید. اما باید بگویم که این روزها عقل و عشق چندان با هم همراه نیستند. من فقط میخواهم از این جنگل بیرون بروم. تیتانیا میگه تو همان اندازه که زیبایی عاقل نیست هستی. لطفا از این جنگل بیرون نرو. من یک پری معمولی نیستم. تابستان در خدمت من است. دوستت دارم. با من بیا. من پریانم را به خدمت تو در می آورم تا از دل دریا جواهر برایت بیاورند و برایت آواز بخوانند. من خشونت ذاتی انسان را از وجود تو پاک می کنم تا مانند پریان سبک شوی. چند تا از پریانش را صدا میکنه تا در خدمت باطن باشند. با این آقا مهربان و معدب باشید. در برابر چشمان او برخصید و برایش زردالو و انگور سرخ و توت وحشی بیاورید. از کندوهای اصل برایش اصل بیاورید و او را به بستری از گل ببرید. با بالهای لطیف پروانه ها او را باد بزنید و او را بسیار محترم بدارید. و پریها به خدمت باتم با سر خر می پردازد. در قسمت دیگه ای از جنگل، اوبران منتظره. پاک که وارد میشه، اوبران میپرسه: خب، امشب در جنگل پریان چه اتفاقی افتاد؟ پاک میگه: همسر شما عاشق یک هیولا شده. در نزدیکی بستر بانو تیتانیا، عده‌ای دلغک جنده پوش دیدم که مشغول تمرین نمایشی برای روز عروسی دوکتیسیوس بودند. احمقترین این احمق ها نقش پیراموس را بازی میکرد او حین تمرین از صحنه بیرون رفت. و من سر خری یافته و آن را روی گردن او گذاشتم. وقتی دلقک به صحنه برگشت رفقایش مثل قاسهای وحشی که چکارچی دیده باشند، پا به فرار گذاشتند. من نیز آنان را تغییب کردم و پیراموس نازنین را تنها گذاشتم. همان موقع ملک تیتانیا بیدار شد و دلباخته خرگشت. اوبران با خوشحالی میگه اوضاع از چیزی که گمان میکردم بهتر است. خب، آیا همانطور که دستور داده بودم؟ شیره گل را به چشم آن جوان آتنی نیز مالی پاک میگه بله آن بانو هم نزدیک او به خواب رفته بود بنابراین باید به محض پیدار شدن او را دیده باشد هرمیا و دیمیتریوس وارد میشند دوباره توضیح بدم دیمیتریوس و لایساندر هر دو عاشق هرمیا بودند. ولی با اون گندی که پاک توی جنگل زد الان لایساندر به جای هرمیا عاشق هلناست هلنا هم مثل قبل عشق یک طرفه ای نسبت به دیمیتریوس داره. ابران میگه آه این همان جوان آتنیست. پاک میگه مطمئنم زن همین بود اما اینکه آن مرد نیست. اینجا های ابران و پاک تموم میشه و صدای دیمیتریوس رو میشنویم که میگه چرا اینقدر با کسی که دوستت دارد بدرفتاری میکنی؟ هرمییا میگه من تا کنون صبور بودم اما حالا باید با تو بدرفتاری کنم. تو کاسه صبر مرا لبریس کردی اکنون اگر تو لایساندر را در خواب کشتی و کفشایت را به خون او آغشته کردی حال وارد دریای خون شو و مرا نیز بکش خورشید به روز وفادار است اما لایساندر از آن هم به من وفادارتر بود باور این که او مرا در خواب رها کرده باشد برای من سخت مشکل است همانطور که نمیتوانم باور کنم زمین سوراخ کشته و قرس ماه از آن عبور کند. تو باید او را کشته باشی. چهره تو مانند قاتلین عبوس و رنگ پریده است. دیمیتریوس میگه چیزی که تو گفتی توصیف است قلب من از سنگدلی تو مجروح شده. اما تو که قاتلی مانند ستارهی سرحال می درخشی. هرمیا که کلاف شده میگه این چه ارتباطی به لایساندر دارد؟ اوه دیمیتریوس او را به من بازگردان. دیمیتریوس میگه ترجیح میدهم جنازه او را به سکهایم بدهم. هرمیام میگه گمشوی سگ پس تو او را کشتی اگر چنین است لیاقت نداری مرد خوانده شوی. حقیقت را به من بگو. تو که شجاعت نداشی در بیداری با او روبرو شوی چرا در خواب او را کشتی؟ اوه چه کار دلیرانه ای کردی. یک مار هم میتوانست چنین کند. بله ای مار هیچ ماری بدتر و گزنده از تو وجود ندارد. دیمیتریوس میگه تو بیهوده بر من خشم میگیری خون لایساندر به گردن من نیست و تا جایی که میدانم او کشته نشده هرمییا میگه لطفاً به من بگو او سالم است دیمیتریوس میگه اگر بگویم چه چیزی نصیبم میشود. شود هرمییا میگه اینکه دیگر هرگز مرا نمیبینی و میره دیمیتریوس هم که میبینه هرمیان اینقدر عصبانیه و الان فایده ای نداره دنبالش بره میسته تا کمی استراحت کنه و همونجا خوابش میبره. اوبران و پاک هم که باز مخفیانه به این گفتگوها گوش میدادن ظاهر میشن. اوبران خطاب به پاک میگه اشتباه وحشتناکی مرتکب شدی. شیره گل را به چشمان آشق واقعی مالیدی؟ حالا به جای اینکه مردی بیوفا آشقی صادق گردد، آشق واقعی پیمان شکسته. تنتر از باد برو و هلنای آتنی را به اینجا بیاور. من چشمان این مرد را افسوم می کنم تا زمانی که هلنا به اینجا برسد پاک میره ابران که گل رو, رو روی چشمای دیمیتریوس فشار میده آروم می خونه ای گل عرقوانی که تیر کوپیت خورده ای در چشم او فرور رو مشوقه را در نظر او مانند ستاره ناهی زیبا و درخشان کن پاک برمیگرده و خبر میده هلنا همین نزدیکی هست و لایساندر داره بهش التماس میکنه. اوبران میگه کنار بیست. سر و صدای آن دو دیمیتریوس را بیدار خواهد کرد. پاک با شادی و خیلی موزیانه میگه آن وقت هر دو عاشق یک زن خواهند شد. دیدن این اتفاق بسیار جالب خواهد بود. لایساندر و هلنا وارد میشن. لایساندر داره میگه چرا گمان میکنی که تو را به تمسخر گرفتم؟ تحقیر و تمسخر هرگز همراه با اشک و آه نیست اشک نشانه راستی گفتار است هلنا میگه تو دائم تصویر خود را بیشتر میکنی. این سوگندها را برای هرمیانی زیاد کرده ای. حالا آنها را میشکنی؟ اگر سوگندهایی که برای من یاد میکنی و سوگندهایی که برای او یاد کردی را در دو کفه ترازو بگذاری خواهی دید که برابر هستند و هر دو به سان افسانه سبک و بیپایند لایساندر میگه دیمیتریوس هرمیا را دوست دارد و شما را نمی خواهد. دیمیتریوس از این سر و صدا بیدار میشه و چشمش به هلنا میفته ای هلنا ای الهه، ای پری ای که کامل و آسمانی هستی چشمان تو را به چه تشبیه کنم لبهای تو مانند دو آلبالوی رسیده چه هوسانگیز انگیز گشتن برف سفید و پاک قله تاروس در برابر دست تو مانند کلاقی سیاه هست بگذار من این سفیدی کامل را ببوسم الان فهمیدیم که با اون شهدی که ابران به ششمای دیمیتریوس مالید الان اون هم عاشق هلنا شده الان لایساندر و دیمیتریوس هر دوشون عاشق هلنا هستند و هیچ کس عاشق هرمیان نیست درست برعکس اول نمایش دامه هلنا که آشفته شده میگه چه عذابی، چه دوزخی متوجه هم که برای تفریح خود با هم هم دست شده و مرا عذیت میکنی آیا نفرتی که از من دارید کافی نیست که حال با هم مرا استهزا کنید؟ شما هر دو عاشق هرمیا هستید و حالا در مسخره کردن من با هم رقابت میکنی هیچ انسان شریفی دوشیزگان را اینطور نمیآزارد و محض تفریح طاقت یک روح مفلوک را طاق لایساندر میگه دیمیتریوس تو هرمیا را دوست میداری و میدانی که من نیز این را میدانم. اینک من با حسن نیت کامل و از ته دل سهم خود در عشق هرمیا را به تو واگذار میکنم و تو نیز عشق هلنا را به من ببخش چون من او را تا لحظه مرگ دوست خواهم داشت. هلنا میگه هیچگاه تمسخور کنندگان اینگونه وقت خود را تلف نکردند. دیمیتریوس میگه لایساندر تو هرمیای خود را نگه دار. اگر هم او را دوست داشتم، اکنون آن عشق کاملا زایل شده. دل من در نزد هرمیا مانند میهمانی بود که توقفی کوتاه و موقت داشت و حالا به خانه خود نزد هلنا بازگشته و همیشه اینجا خواهد ماند. هرمیا وارد میشه. میگه شب تاریک قدرت چشم مرا از بین می برد و قدرت شننوایی را دوچندان می کند. من شما را با چشمانم پیدا نکردم بلکه گوشهایم مرا به سوی شما آورد. لایساندر چرا مرا ترک کردی؟ لایساندر میگه زمانی که عشق انسان را به رفتن میخواند چرا باید درنگ کرد ؟ هلنای زیبا معشوق من است و عشق او بود که نگذاشت در کنار تو بمانم؟ او بیشتر از ستارگان آتش این شب را روشن می کند چرا دنبال من آمدی؟ نمی فهمیدی که نفرت من از تو مرا واداش تو را ترک کنم؟ هرمیا میگه نه چنین چیزی ممکن نیست هلنا که هنوزم داستان رو جدی نگرفته و فکر می کنه. همه دارم مسخرش می کنم میگه اوه هرمیا نیز همدستان دوست ای هرمیا یه حق نشناست مگر من و تو با هم هزاران راز رد و بدل نکردیم و پیمانهای خواهرانه نبستیم. زمان بادپا را ملامت میکردیم که ما را از هم جدا میسازد. سوزنهای من را بر یک پارچه فرود میآوردیم و گل خلق میکردیم. مانند یک روح در دو بدن بودیم که در عین جدایی یگانگی داشتیم و با هم بزرگ شدیم. همه ی آنها فراموش شد روزگار معصومیت کودکی برباد رفت آیا تا رشته دوستی خود را با من پاره می کنی و همدست مردان میشوی تا مرا تمسخر کنی؟ هرمیا می میگه من از سخنان پرشوره تو در حیرتم. من تو رو نمی کنم بلکه گمانم تو مرا تمسخر کنی هلنا میگه مگر تو لایساندر را دنبال من نفرستادی که صورت و چشمانم را ستایش کند؟ مگر آن دلداده دیگر دیمیتریوس که تا اکنون مرا از خود میران را وا نداشتی که به من لقب الهه آسمانی بدهد؟ چرا او با کسی که از او نفرت دارد اینگونه سخن میگوید چرا لایساندر که توانگری روحش مدیون عشق توست انکار میکند عاشق توست و عشقش را به من ابراز میکند هرمیای از همه جا بی خبر میگه منظورت را نمیفهمم هلنا هم که حرف به گوشش نمیره میگه بله با ظاهر محزون و متظاهرانت ادامه بده و وقتی روی برگرداندم به من دهنکجی کن اصلا به یکدیگر چشمک بزنید تا حدودی تقصیر من است و من آن را با رفتن خود پایان دهم لایساندر به هلنا التماس میکنه که بمونه. دیمیتریوس میگه من ادعا می میکنم که تو را بیش از او دوست دارم. لایساندر میگه پس آن را ثابت کن و شمشیر میکشه که به جنگ دیمیتریوس بره. هرمیا دست لایساندر رو میگیره و میگه لایساندر این حرف ها به کجا ختم می شود؟ لای میگه مرا رها کنه ای میمون ای پلید وگرنه من تو را طوری دور خواهم انداخت انگار ماری هستی تا عمر دارم دیگر آرزو نمی کنم تو را ببینم شوخی نیست که من از تو متنفرم و هلنا را دوست دارم هرمییا خطاب به هلنا میگه ای هیلگر ای دزد عشق شب آمده ای و قلب محبوب مرا دزدیده ای هلنا میگه اوه میبینم که هیچ شرم نداری میخواهی زبان نرم مرا وادار به جوابهای تند بکنی شرمآور است ای متقلب ای عروسک بدلی هرمیا میگه پس میخواهی بازی را اینگونه پیش ببری قد خود را به رخ من میکشی و گمان میکنی چون من از تو کتاه هستم مقام تو بالاتر رفته ای چوب دراز قد من آنقدر کوتاه نیست که ناخونهایم به چشمان تو نرسد هلنا میگه آقایان اگر چه مرا مسخره میکنید اما نگذارید او آسیبی به من بزند من هیچ وقت بهره از هنر سلیتهگری نبردم و ترسو هستم شاید گمان کنید چون من از او بلندتر هستم میتوانم از پس او بر بیایم اما با اینکه او کوچکتر است وقتی عصبانی است می میشود هرمیا که خیلی بدش اومده هلنا بهش گفته قدکوتا بهش حمله میکنه که لایساندر اونو عقب میکشه و بهش میگه دور شو ای کتوله نیموجبی وجبی ای دانه تسبیح ای میوه بلوت دیمیتریوس خطاب به لایساندر میگه تو در خدمت به کسی که از تو بیزار است خیلی شور و حرارت به خرج میدهی. به هلنا کاری نداشته باش و با او ابراز عشق نکن وگرنه بهای آن را میپردازی لایساندر هم میگه اگر جرئت داری به دنبال من بیا تا ببینم کدام یک حق بیشتری بر هلنا دارد و هر دوشون برای دوئل بر سر هلنا بیرون میرن هلنا به هرمیا میگه من به تو اعتماد ندارم تو سلیته هستی و من پیش تو نخواهم مان درست است که دستان تو برای جنگیدن تر هستند اما پاهای من برای فرار دراستر است و اینجا میدوه و بیرون میره هرمیا هم که ماتو و مپوت اتفاقات اخیره از طرف دیگهی بیرون میره اوبران و پاک باز تنها شدند اوبران میگه اینها همه آثار قفلت توست ببینم واقعا اشتباه کردی یا این دقلبازی ها رو عمدن درآوردی مسخره ای کلن یا ما را مسخره کردی پاک میگه نه باور بفرمایید اشتباه کردم شما گفتید جوان را از لباسهای آتنیش بشناسم پس حالا که شیره را در چشم یک آتنی کردم شایسته ی توبیخ نیستم گرچه حالا خوشحالم که مرتکب این اشتباه شدم دیدن جدال آنها بسیار سرگرم کننده است ابران میگه این مردان به دنبال جایی برای جنگیدن هستند دنبال ایشان برو و شب را برانان سیاه کن نگذار دو رقیب یکدیگر را بیابند گاهی با صدای لایساندر سخن بگو و دیمیتریوس را برانگیز گاهی نیز دیمیتریوس باشو لایساندر را عصبی کن آنقدر این کار را ادامه بده تا خواب برانان چیره شود سپس این شیره را بر چشم لایساندر بمال این شیره تلسم را باطل می کند و چشمان او همان چیزی را خواهد دید که پیشتر می دید زمانی که بیدار شوند تمام این خشم مانند رویا به نظر می رسد و عشق این اشاق تا پایان عمر برقرار خواهد بود در این فاصله من نیز به سراغ تیتانیا می روم. و از او میخواهم کودک هندی را به من تحویل دهد و تلسم را از چشمان او میزدایم. و میره که بره سراغ تیتانیا و پاک هم میره دنبال لایساندر و دیمیتریوس لایساندر میگه کجا یه دیمیتریوس متکبر حرف بزن پاک اینجا جای دیمیتریوس حرف میزنه و میگه اینجا هستم این خبیس شمشیر من آماده مبارزه با توست تو کجا هستی لایساندر میگه الان به تو خواهم رسید و به دنبال صدا بیرون میره. دیمیتریوس وارد میشه. جواب بده ای لایساندر ترسو. ای فراری آیا در بوته ها پنهان میشوی؟ پاک این بار جای لایساندر حرف میزنه و میگه ای بزدل با ستارگان لاف میزنی و به بوته ها میگویی در طلب جنگ هستی؟ پیش من که نمیایی. بیای ای خواهن. من تو را با ترکی کتک خواهم زد. زیرا شرماور است بر توی کودک شمشیر کشید. دیمیتریوس به دنبال صدا خارج میشه. لایساندر وارد میشه. جلوتر از من میرود و مرا به مبارزه می طلبد. اما وقتی پیش میروم می, می گریزد و دور می شود. این شرور خیلی سری است. من به سرعت دنبال او میروم اما او سریعتر می گریزد. اینک بهتر است همینجا استراحت کنم و و زمانی که روز مهربان فرامی رسد دیمیتریوس را پیدا می کنم و با او خواهم جنگید. لایساندر روی زمین دراز می کشه و به خواب می ره. دیمیتریوس وارد می شه. پاک با صدای لایساندر می گه آهای! آهای ای ترسو! چرا بیرون نمی دیمیتریوس می گه اگر جرأت داری بیست تا بیایم. تو مرا به مبارزه می اما مدام می گوریزی. جرعت این را نداری که به چهره نگاه کنی. پاک با صدای لایساندر میگه از این طرف من اینجا هستم. دیمیتریوس میگه نه تو مرا دست انداختی. اگر در روشنی روز تو را ببینم برایت گران تمام میشود. اما اکنون به راه خود ادامه بده. من همینجا دراز میکشم و منتظر نور روز میشوم. و دراز میکشه و میخوابه. هلنا وارد میشه. ای شب تیره اتار. از ساعت‌های خود بکاه تا من در روشنایی روز از اینان که مرا میآزارند بگریزم ای آرامش از خاور به من بتاب امیدوارم اکنون خدای خواب که گاه گاه اندوه را از چشم آدمی دور می‌کند مدتی مرا از فکر و خیال دور بدارد و هلنا هم اینجا میخوابه. پاک که منتظر هرمیاس به خودش میگه کپیت واقعا شیطانی است که این زنان را اینطور دیوانه می کند. هرمیا میاد و میگه هرگز تا به این اندازه خسته و غمگین نبودم شبنم مرا آلوده و خارها مجروحم کردن نمیتوانم جلوتر از این بروم همینجا تا طلوع صبح خواهم آرمید اگر این دو مرد با هم بجنگند، خدا لایساندر را حفظ کند و هرمیا هم به خواب میره الان هر چهار نفرشون خوابیدن پاک کمی صبر میکنه که خواب همه سنگین بشه و بعد میره سراغ لایساندر و میگه ای عاشق مهربان روی چشمت دوای شفابخش می نهم هنگامی که بیدار شوی لذت واقعی را در تماشای معشوق همیشگیت خواهی یافت و گیاه رو به چشمهای لایساندر فشار میده در جنگل لایساندر، دیمیتریوس، هلنا و هرمیا خوابیدند. باتم و تیتانیا و پریهای همراهشون وارد میشن. اوبران هم یواشکی پشت سرشون پدیدار میشه. تیتانیا به باتم خرکله میگه: ای مایه شادی من، روی این بستر گل بنشین تا من گونههای نازنین تو را نوازش کنم و گوش بزرگ و زیبای تو را ببوسم. باتم به چند تا از پریها دستور میده که سرش رو بخارونن. بعد میگه باید به سلمانی بروم. از بس خره لطیف و حساسی هستم موهای مرا قلقلک میدهند. تیتانیا میپرسه ای محبوب زیبا رو دوست داری کمی موسیقی بشنوی میل داری چه چیزی بخوری باتم میگه مشتی یونجه و موسیقی محلی را نیز دوست دارم تیتانیا پیشنهاد میده یکی از پریها رو بفرسته تا از لونه سنجاب گردوی تازه بیاره اما باتم میگه فیلن خوابش میاد و ترجیح میده بخوابه تیتانیا باتم رو در آغوش میگیره و هر دو خوابشون میبره اینجا پاک وارد میشه اوبران میگه خوش آمدی این منظره دلپذیر را میبینی؟ من دیگر دارم بر شیفتگی تیتانیا ره می آورم. کمی پیش او را پشت جنگل ملاقات کردم. دنبال گلهای زیبا برای این احمق نفرتنگیز بود. سر پرموی این موجود وحشتناک را با گلهای تازه و خوشبو آراسته. شبنم روی این گلها به عشقی می ماند که آنها از این ننگ میریختند. به هر حال هرچقدر تیتانیا را تحقیر و سرزنش کردم او با کلمات آرام با من سخن میگفت آنگاه آن پسر بچه را از او طلب کردم و او بیچون و چرا بچه را به من داد حالا که به خواست خود رسیدم تلسم را از چشمان او میزدایم تو نیز ای پاک مهروان سر خر را از گردن این دهقان احمق بردار تا او نیز مانند بقیه بیدار شود و اتفاقات امشب را چیزی جز رویایی در شب نیمه تابستان تلقی نکند. اوبران شیره یک گل دیگر رو به چشمای تیتانیا میماله و میگه باش گونه که بودی ببین چنان که میدیدی بله گل دایانا چنین اثری دارد تیتانیا بیدار میشه اوه اوبران چه رویای وحشتناکی دیدم خواب میدیدم آشق خری شدم اوبران میگه معشوق تو آنجا خفته است تیتانیا به باتم نگاه میکنه چطور چنین اتفاقی افتاد؟ آه چقدر رضو متنفرم اوبران به پاک دستور میده که سر خر رو از گردن باتم برداره بعد رو به تیتانیا میکنه و میگه تیتانیا بگو موسیقی بنوازند و این فانیان را در آرامشی مرگاسا فرو ببر بران میگه بیا ای بانوی من دست مرا بگیر و زمینی که این فانیان روی آن خوابیدند را مثل گهواره به جنبان اینک من و تو مهر تازه کردیم فردا در عروسی تیسوس ترب خواهیم کرد و هاشان را مبارک ساخته شادی و های فراوان برای آنها فراهم خواهیم کرد اکنون خاموش و سنگین به دنبال سایه شب روان میشویم و از ماه جهانگرد سبقت می می‌جوین. تیتانیا دست اوبران رو میگیره و با هم بیرون میرن. ایجیوس پدر هرمیا، تیسوس، هیپولیتا و همراهانشون وارد میشن. تیسوس و هیپولیتا دارن در مورد نغمه خوش سگ‌های چکاری با هم حرف میزنند که چشمشون به اون چهار عاشق می‌افته. تیسیوس میگه اینها کی هستند؟ ایجیوس میگه سرورم، این دختر من است. این اینها لایساندر و دیمیتریوس هستند و این هم هلنا دختر نیدار است تعجب می کنم که آنها اینجا با هم هستند تیسیوس میگه بی صبح زود برخواستند تا جشن آخر بهار را به آورند و چون از قصد ما برای شکار مطلع شدهاند به خاطر ما به اینجا آمدند اما ایجوس این همان روزی نیست که هرمییا باید انتخاب خود را اعلام کند ایجوس میگه بله قربان امروز است تیسیوس دستور میده شیپور به نوازن، تا این چهار نفر بیدار بشن. لایساندر، دیمیتریوس، هلنا و هرمیا از جا میپرند تیسیوس میگه صبح بخیر دوستان. آیا این مرغ اشقان جفت خود را برگزیدند. از شما میخواهم برخیزید. من میدانم که شما دو تا با هم رقیب هستید. پس چطور چنین آسوده در کنار هم خوابیدید؟ لایساندر میگه سرورم مرا اف کنید. در کمال تحییر جواب شما را می دهم. چون هنوز میان خواب و بیداری هستم اما صادقانه باید بگویم نمیدانم چه شد که به اینجا آمدم من و هرمیای زیبا قصد داشتیم از آتن بگریزیم و جایی برویم که دست قانون مهلک آتن به ما نرسد ایژیوس که این حرف رو می‌شنوه، با خشم میگه قربان همین اندازه برای اثبات جرم او کافی است استدعا دارم قانون اجرا شود دیمیتریوس اینها قصد داشتند بگریزند و من و تو را از مقصود خود باز دارند. میخواستند تو را از همسرت و مرا از رضایتی که به ازدواج شما دادم محروم کنند. اما دیمیتریوس که اصلاً عصبانی و ناراحت نیست میگه هلنای زیبا مرا را از فرار آنها باخبر کرد و من نیز به دنبالشان آمدم. اما حالا نمیدانم چه نیرویی باعث شده اشق من به هرمیا مانند برف آب شود. همه ایمان و علاقه من اکنون از آن هلناست. پیش از آن که هرمییا را ببینم با هلنا نامزد کرده بودم. اما مثل بیماری که از غذایی بیزار می شود از او بیزار شده بودم و حالا سلامت خود را باز یافته و دوباره همان غذا را طلب می کنم. من هلنا را دوست دارم و تا ابد به او وفادار خواهم ماند. تیسوس میگه ای عاشقان همدل، شما به خوشی به یکدیگر رسیده ایید من حکم میکنم این دو زوج فردا همراه عروسی من و هیپولیتا با هم پیوند ابدی ببندن. حالا نیز چون مدتی از روز گذشته بهتر است از شکار منصرف شویم و برگردیم. هیپولیتا همراه من بیا. تیسوس و همراهان میرن. دیمیتریوس میگه شما مطمئن نیست که ما بیدار هستیم. من گمان میکنم هنوز خواب هستیم. آیا دوک اینجا بود و به ما گفت دنبالش برویم؟ هرمیا میگه بله و پدرم. هلنا میگه و ایپولیتا. دیمیتریوس میگه پس بیایید به دنبالشان برویم و در مسیر از رویاه هایی که دیدیم سخن بگوییم. و اینجا چهارتایی بیرون میرن. اما باتم. باتم از خواب بیدار میشه و میگه هر وقت نوبت سخن گفتن من بود صدایم کنید. کوینز، اسناگ به خدا قسم همه‌شان دزاکی رفتند و مرا در خواب رها کردند ولی چه خواب عجیبی دیدم بهتر است نزد کوینز بروم تا در مورد این خواب تصنیفی بسراید و آن را رویای باتم بنامد بهتر است رویای باتم را برای دوک نمایش بدهیم تا مرگ پیراموس و تیزبی و بعد از گفتن این حرف‌ها بیرون میره. از اون طرف گروه تئاتر نگران و پریشان وارد خانه پیتر کوئینز در آتن می‌شوند کوئینز می‌پرسد آیا باتم به خانه برگشته؟ هیچ خبری از او نیست. استارولینگ میگه بیشک اتفاقی برای او رخ داده. فلوت میگه اگر او نیاید نمایش خراب میشود نمیتوانیم بدون او اجرا کنیم. میتوانیم؟ کوئینز میگه خیر. هیچکس نخواهد توانست مثل او نقش پیراموس را بازی کند. او بهترین فرد است. صدا و اندام دلنشینی هم دارد. همینطور که نگران به هم خوردن نمایشان، باتم وارد میشه. همه خوشحال از جا میپرند کوئینز میگه اوه oh, باتم عزیز چه روز فرخنده ای چه ساعت خوشی باتم میگه آقایان میخواهم حرفای عجیبی به شما بزنم اما از چگونگی آن نپرسید اما الان دوک شام خورده لباسهای خود را بردارید و روبانه روی کفش هایتان را بگذارید تا در قصر به من ملحق شوید تیزبی لباس تمیز بپوشد کسی که نقش شیر را بازی میکند ناخن خود را نچیند زیرا از آن به جای چنگال استفاده می‌کنیم. آقایان به هیچ وجه سیر و پیاز نخورید نمایش ما یک کمدی دلنشین است و نفس ما نباید بدبو باشد حالا بروید بروید در کاخ تیسوس در آتن، تیسوس، هیپولیتا و همراهانشون وارد میشن. هیپولیتا میگه تیسوس من، آنچه این عاشقان نقل میکنند بسیار عجیب است. تیسوس میگه بله، بیشتر عجیب است تا راست. هرگز نمیتوانم چنین افسانهها ها و بیهودگی هایی را باور کنم. آشقان و دیوانگان مغزهایی چنین خیال خیالپرداز دارند. آنها چیزهایی را مجسم میکنند که عقل سلیم قادر به ادراک آن نیست. دیوانه و عاشق سراپا از خیال ساخته شدند. تصور شادی شادی به وجود می آورد و در شب تصور ترس می تواند باعث شود بوتهی به شکل خرس به نظر برسد. هیپولیتا با تردید می گه، اما داستانی که آنها گفتند بسیار یکسان است و از حد خیال پردازی گذشته. ارتباطی که هایشان با یکدیگر دارد باورپذیر است. لایساندر، دیمیتریوس، هرمیا و هلنا وارد می شن. تیسوس بهشون درود میفرسته و از مباشرش میپرسه از حالا تا وقت خواب چه برنامهی برای سرگرم کردن اونا دارن؟ مباشر ای به تیسوس میده که توش لیست نمایش هایی که برای امشب است رو نوشته و تیسوس و هیپولیتا میتونن از بین اونا یکی رو انتخاب کنند. تیسوس برگیر رو میگیره و از روش میخونه. جنگی که قرار است خاجه آتنی با چنگ بخواند. نه نه این را نمیخواهیم، این داستانیست است از خیشاوندم هرکول و من آن را قبلا برای معشوقم تعریف کردم شورش باکنال های مست که خشمگین میشوند و به خواننده حمله کرده او را پاره پاره میکنند او این قدیمی است و من قبلا آن را دیدم صحنه ای کوتاه و خسته کننده از پیراموس و معشوقش تیزبی یک کمدی غم هم کمدی این مانند یخ داغ است، مانند برف سیاه، این یعنی چه. مباشر میگه قربان، در این نمایش فقط ده کلمه گفته می شود. اما همان ده کلمه هم اضافی است، زیرا هیچ کلمه ای به جا استفاده نمی شود و هیچیک از بازیگران مناسب نقش خود نیستند. از طرفی سوزناک هم هست، زیرا پیراموس خود را میکشد باید بگویم هنگامی که تمرین این نمایش را دیدم اشک از چشمانم جاری شد اما آن اشک ها اشک عشق شوق بودند تیسوس میپرسه بازیگران این نمایش چه کسانی هستند مباشر میگه کارگران سخت کوش آتن که تا کنون هرگز از مغزشان کار نکشیدند ولی اینک برای عروسی شما این نمایش را آماده کردند قربان من این نمایش را دیدم و اصلا مناسب محضر شما نیست تیسوس میگه همین را تماشا میکنیم وقتی سادگی و وزیف شناسی مبنای عمل قرار گیرد آن عمل هرگز زشت و بد نخواهد بود حتی اگر کسانی نهایت تلاششان را بکنند و باز از عهده کاری بر نیایند بزرگواری در آن است که نتیجه کارشان را خرد نشماریم بلکه میزان اخلاصشان را گرامی بداریم مباشر برو آنها را بیاور مباشر میره و با کوینز، باتم، فلوت، ستارویلینگ و سناک برمیگرده. شیپوری نواخته میشه. کوینز در نقش راوی میگه: اگر موجب کدورت شما شدیم، نیت ما پاک است. نیت ما آزردن شما نیست، بلکه حسن نیت است. اما همین کار ما نادرست است چون ما نیامدیم شما را راضی کنیم. با این همه تصمیم داریم آنچه از زستانمان برمیآید برای شادی شما انجام بدهیم. امیدواریم از حضور خود در این مجلس پشیمان نشوید. نمایش آنچه باید نشان دهد، نشان خواهد داد. همه حضار حیرت کردند. تیسوس میگه این مرد جملات خود را درست ادا کند. سخنانش مانند زنجیر گره خورده است. ناقص نیست ولی هیچ نظمی هم ندارد. کوینس ادامه میده. حضار گرامی، شاید متعجب شوید ولی به تعجب خود ادامه دهید. این مرد است. این بانوی زیبا تیزبی این مرد نقش دیواری را بازی می کند که میان عاشقان جدایی انداخته و از میان شکاف آن عاشقان با هم نجوا می کنند. این مرد که فانوس در دست دارد نیز نقش ماه را دارد زیرا این عاشقان در پرتو ماه با هم دیدار می کند این حیوان مهیب هم شیر نامیده می شود که تیزبی را می ترساند. هنگام فرار کت تیزبی روی زمین می افتد و شیر نابکار با دهان خونالود آن را تکپاره می کند پیراموس لباس را می بیند و تصور می کند که معشوق عزیزش کشته شده. پیراموس نازنین و بلند بالا با شمشیر شجاعانه سینه خود را چاکچاک چاک کرد. تیزبی نیست که پشت درخت بنهان شده بود شمشیر را گرفت و خود را کشت. حالا بگذارید برای اتمام داستان شیر، محتاب، دیوار و این دلدادگان خودشان سخن بگویند. تیسوس میگه نمیدانم شیر هم سخن خواهد گفت یا نه. دیمیتریوس میگه اگر هم بگوید تعجبی ندارد قربان جایی که خران بیشمار سخن میگویند شیر هم میتواند بازیگر نقش دیوار میگه در این نمایش من نقش دیوار را بازی میکنم شما نیز باید تصور بکنید که این دیوار شکافی دارد این آهک و کاهگل ها نیز تاکید بر دارند که من دیوار هستم دیمیتریوس میگه این باهوش ترین دیواری است که من تا کنون سخن گفتنش را شنیدم باتم در نقش پیراموس جلو میاد و میگه آه ای شب سیاه ای شب که هرگاه میایی دیگر روز نیست آه ای شب افسوس افسوس میترسم تیزبی وعده خود را فراموش کرده باشد و تو ای دیوار ای دیوار نازنین برای دیدن او شکافی به من نشان بده دیوار انگوشتاش رو بالا میبره و حالت وی نگه میداره پیراموس میگه متشکرم ای دیوار نازنین جوپيتر تو را حفظ کند اما من که تیزبی را نمیبینم آه ای دیوار لعنت به تو ای دیوار ای دیوار حق باز و نابکار که این گونه مرا فریب می دهی. مل اون باد سنگ های تو تیسوس میگه گمانم حالا که دیوار جان دارد نیز در برابر های پیراموس ناسزا بگوید با باتم در نقش پیراموس که این حرفها رو میشنوه برمیگرده به سمت تیسوس و میگه نه نه سرورم اون نباید ناسزا بگوید فریب میدهی نشان ورود تیزبیس و حالا باید تیزبی وارد شود. <تصفيق> تیزبی وارد میشه. آه ای دیوار بارها شنیدی من از این که تو بین من و پیراموس جدایی افکندی ناله سردادم. لب‌های من بارها بر سنگهای تو بوسه زده. پیراموس صدای تیزبی رو میشنوه. آه این صدای محبوب من تیزبی است من هنوز به تو وفادار هستم. از میان سوراخ این دیوار ناهنجار مرا ببوس. حزبی میگه من فقط سوراخ دیوار را میبوسم و هایم به تو نمیرسد. بعد با هم سر مقبره نینوس قرار می‌ذارن و از صحنه خارج میشن. بازیگر نقش دیوار میگه اینک من نقش خود را کامل انجام دادم و میروم. بعدش از صحنه خارج میشه. هیپولیتا میگه هرگز چنین چیز احمقانه‌ای نشنیده بودم. اسناک در نقش شیر وارد میشه. میگه ای بانوان عزیز که دلهای نازوکتان از کوچکترین موش ها نیز میترسند. اکنون ممکن است از قررش شیر بترسید. اما بدانید که من شیر نیستم بلکه اسناک قابساز هستم. استار که خار روی سرش گذاشته و فانوسی توی دستش داره و سگی هم همراهشه در نقش محتاب میگه من نیز نماینده محتاب هستم. این فانوس نشانه هلال ما هست و من نیز گوی مرد توی ما هستم. این خارها که بر سرم نهادم خارهای من است و این سگ سگ من است اون زمان مردم اعتقاد داشتن لکه هایی که روی ماه دیده میشه لکه نیست بلکه مردیه که خار روی سرش گذاشته و یه سگ همراهشه اینا اشاره به همون اعتقاد داره تیسوس میگه این دیگر اشتباه است. این مرد باید توی فانوس باشد وگرنه چطوری مرد روی ماه است دیمیتریوس میگه او از ترس شم جرأت ندارد توی فانوس برود اما ببینید تیزبی دارد می میآید تیزبی وارد میشه میگه این مقبره نی نیست پس محبوب من کجاست شیر قُرش میکنه و تیزبی در حال فرار کتش رو روی زمین میندازه حزار هم حسابی از این صحنه کیف میکنن پیراموس وارد میشه ای ماه سیمین برای پرتو نورانیت از تو ممنونم زیرا در پرتو زیبای تو میتوانم از دیدار تیزبی لذت ببرم اما صبر کنید این چیست این چشمها؟ آه درست میبینید آه ای نازنینم ای مرغک شیرینم این جامعه توست که آقشته به خون شده ای بخت تار و پود مرا ببر مرا مقهور و سرد کن خاموش ساز و پایان بخش ای طبیعت چرا شیر آفریدی شیر پلیت محبوب مرا نابود کرد ای عشقا بریزید مرا نابود کنید ای شمشیر بر سینه پیراموس زخم بزن به جایی که قلب میتپد اینک من میمیرم روح من در آسمان است ای ماه پرواز کن و بگریز وقتی داره این حرفا رو میزنه به خودش خنجر میزنه و میمیره تیزبی وارد میشه هیپولیتا میگه او نباید خطابه طولانی برای چنین پیراموسی بخواند. امیدوارم مختصر سخن بگوید. تیزبی میگه خفته ای معشوق من عجبا مرده ای معشوق من ای پیراموس برخیز لال شده ای مرده ای آه گور باید چشمان زیبای تو را بپوشاند این لبان سوسن سا و این گونه ها که مانند گل های بهاری هستند رفتند ای آشقان بنالید ای زبان دیگر سخن نگو بیا ای شمشیر وفادار و با تیغه خونین خون مرا بریز. ای دوستان خدا حافظ. به دینگونه تیزبی پایان میپذیرد. تیزبی هم به خودش خنجر میزنه و میمیره. تیسوس میگه تنها محتاب و شیر برای دفن مردگان ماندند. با تم باز با شنیدن این حرف از جا بلند میشه و میگه یعنی مرده دیگه در نقش 피라무스 مرده یه دفعه بلند میشه میگه نه خیر به شما اطمینان هم دیواری که پدران آنها را از هم جدا میکرد از میان برداشته شده آیا میل دارید پس گفتار نمایش را ببینید یا میخواهید رقص ما را ببینید که تیسوس رقص را انتخاب میکنه و بازیگرها میرقصن و کم کم خارج میشن تیسوس میگه زبانه آهنین ساعت نیمه شب را اعلام میدارد ای عاشقان به بستر بروید این نمایش ساده بود اما قدم سنگین شب را به خوبی سبک کرد پس به بستر بروید ای دوستان ما چهارده روز این مراسم را ادامه خواهیم داد و هر شب بساط طرب جدیدی برپا خواهیم کرد همه بیرون میرن پاک جارو به دست وارد میشه اینک شیر گرسنه میگرد و گرگ در برابر ماه زوزه میکشد هنگام است و ای که با قم هماقوش شده یاد کفن میافتد اینک گورها دهان باز کرده و اشباه خود را بیرون میفرستند تا در جاده ها روان شوند. ما پریان نیز به دنبال عرابه خورشید حرکت می کنیم. من نیز با جاروی اینجا فرستاده شدم تا این گرد و خاک را بزدایم اوبران، تیتانیا و بقیه پری ها آوازخان وارد میشند این سه جفت آشق همواره وفادار و خوشبخت خواهند ماند. لکه های دست طبیعت هرگز بر فرزندان آنان آشکار نخواهد شد و آنان از هر گونه شگون بد در امان خواهند بود. هر کدام از پریان شب نمی بردارد و اتاقهای این خانه را با آن خجسته دارد و از نعمت آرامش برخوردار کند و با این شعله های ملایم آتش روشنایی نرمی به سراسر این خانه ببخشید. ای پریان! تا دمیدن صبح در این خانه بخرامید و برخصید و صبحگاه نزد ما بازگردید. پریان و اوبران و تیتانیا میرخصن و بیرون میرن. پاک میخونه. ای عزیزان، اگر ما سایه ها کاری کردیم که برای شما ناخوشایند بود، شما تصور کنید تمام اینها را در رویا دیدید. ای. ای سروران گرامی، از این افسانه پوچ خورده نگیرید. شب بر همه شما، خوش اگر دوست ما هستید مرا تشویق کنید و پاک حتما برای شما جبران خواهد کرد کسی که شنیدید قسمت 16 همه پادکست الف نمایشنامه رویایی در شب نیمه تابستان بود این نمایشنامه همینطور که شنیدید تقریبا به چهار قسمت تقسیم میشه عروسی تیسوس و هیپولیتا تمرین نمایش پیراموس و تیزبی، سرنوشت اون چهار تا عاشق و جنگ و جدال شاه و ملکه پریان تیسوس و هیپولیتا رو که در شروع نمایشنامه درباره توضیح دادم و گفتم که شکسپیر اونا رو از اساتیر یونان گرفته و فقط به اسامیشون اکتفا کرده و داستان اساتیری اینا در نمایش نامه به چشم نمیاد نمایش نامه پیراموس و تیزبی که باطم و رفقاش داشتن براش تمرین کردن برای اجراش و اجراشم کردن اختباسی از کتاب میتامورفوس ها اثر اوویده سرنوشت چهار آشق یعنی هرمیا و لایساندر و هلنا و دیمیتریوس کاملا کار خود شکسپیره و بسیار هم جذاب و دوست داشتنی و آخرین قسمت نمایشنامه یعنی داستان پریان از دوتا منبع اومده اولی ادبیات انگلستانه به خصوص منظومه ملکه پریان که اوبران و تیتانیا از اونجا میان دومی هم قصه های فولکلور و آمیانه مردمه که مثلا پاک از اونجا اومده مسئله دیگهی که باید بهش اشاره کنیم زمان های نمایشنامه است اسم نمایشنامه رویا در شب نیمه تابستانه ولی زمان اتفاقات نمایشنامه اصلا تو نیمه تابستان نیست. داستان نمایشنامه در اواخر آوریل و اول ماه می داره روایت میشه. تقریبا میشه هشتم تا دهم ده اردی بهشت به ماه و نیمه بهاراست بیشتر تا تابستان. پس چرا اسمش رویای شب نیمه تابستانه؟ دو تا تئوری براش هست. یکیش اینه که روز نیمه تابستان مثل شب یلده که تو زمستونه جشن یوهنهای مقدس گرفته می شده که یکی از های خیلی مهمه مسیحیت بوده. همین الان هم هست. مثلا کریسمس تابستونیه. تو این روز بسات جشن بوده و رقص و پایکوبی و از همه مهمتر تاعتر رو نمایش. و این نمایش همه در واقع نوشته شده برای اجرا در اون شب. در واقع رویایی برای شب نیمه تابستانه. تئوری دوم این اسم رو به دیوانگی نیمه تابستان ربط میده. اون زمان ها اعتقادی وجود داشته یک خرافاتی وجود داشته که گرمای زیاد مغز آدم رو از بین میبره و وسط تابستون هم که گرما از همیشه شدید آدم مستعد دیوانگی موقت میگن شکسپیر به خاطر موضوع خیلی خیالنگی نمایش نامه و به خاطر اون اعتقاد رایج این اسم رو روی اثرش گذاشته. یه جایی هم نوشتن که نمایشنامه برای یک عروسی سلطنتی نوشته شده که حالا من واقعا نمیدونم اگر این روایت درست باشه یعنی عروسی توی نیمه تابستون و همزمان با اون جشن مهم مسیحیان بوده یا اینکه اون دو تا روایت اول که گفتم کلا غلطن و نمایشنامه برای اجرا توی روز عروسی نوشته شده. واقعا نمیتونیم مطمئن باشیم کدوم درسته ولی دونستنشون جالبه. در مورد پلات و مفاهیم نمایشنامه هم باید بگم با اینکه رویا در شب نیمه تابستان تم رمانتیک داره نمیشه عاشقانه حسابش کرد عشق در نمایشنامه قدرتی نداره آخه محکم و حقیقی نیست و به راحتی با شیره یک گل به وجود میاد و با یه ورد از بین میره و عشق انسانها و حتی ملکه پریان به دست پاک و اوبران مدام تغییر می میکنن به جز اینها چند تا مورد دیگه هم هست که نشون میده شکسپیر حداقل اقل در برهی که این نمایش رو نوشته به عشق به عنوان یک نیروی برتر اعتقاد نداشته و عشق رو دیوانگی و خیال میدونسته. برای مثال به نمایش پیراموس و تیزبی فکر کنید. متوجه شدید که این نمایش و پرداخت شکسپیر به این نمایش چقدر شبیه یک نسخه پارودی از رومیو و جولیته؟ شکسپیر نمایشنامه خودش و دیدگاهش به عشق توی اون نمایشنامه رو اینجا در قالب پیراموس و تیزبی حجف کرده و عشق رو مسخره میکنه. یا یه مثال دیگهش کارهایی که شخصیت‌های نمایشنامه به خاطر عشق می‌کنن و نفرت و حسادتی که به هم دارن که مدام هم می‌چرخه و عوض میشه، یا عشق تیتانیا به باتم، همه برای ما بیننده های نمایش یا شما شنوندگان نمایش مزحک و مفرح به نظر میاد. در حالی که تا بوده در تاریخ و در ادبیات عشق و تراژدی و عشق ریختن مثلا به هم گره خورده بودند اما شکسپیر اینجا میاد و حداقل توی این نمایشنامه نشون میده از این خبرها نیست یه برداشت دیگه هم که میشه از نمایشنامه کرد اینه که با توجه به اینکه اوبران و پاک دارن کاراکترهای دیگر رو بازی میدن و اونا بی خبر از همه جا عاشق و فارق میشن و کارهای عجیب میکنن این سوال برامون پیش میاد که ما به عنوان انسان چقدر توی سرنوشت خودمون اثر داریم و چقدر میتونیم به خودمون، چشمامون و احساسمون اعتماد کنیم البته من خودم موافقه این نیستم ولی یکی از برداشت های خیلی محبوب از نمایشتم است درباره باره رویای شب نیمه تابستان نقد و تحلیل و برداشت های مختلف زیادی هست حتی دو نسخه های انگلیسی مثلا خود نمایشنامه اگر 100 صفحه باشه خیلی بیشتر از صفحات نمایشنامه توضیحات و تحلیل و اینا نوشته شده براش که من دیگه اینجا خیلی طولانیش نمیکنم ولی اگر بخواید خودتون میتونید دنبالش برید و بخونید اینم بگم که نمایشنامه اقتباس های سینمایی زیادی ازش ساخته شده که طبق نقد ها و نمره هاشون تا جایی که من متوجه شدم نسخه سال 1999 که هم اسم نمایشنامه هم هست از بقیه بیشتر بهش توجه شده و اگر علاقه من بودید میتونید اون رو ببینید خیلی ممنون که تا اینجای این اپیزود پادکست علف رو شنیدید و از مهدیس ممنونم که برای نوشتن متن این اپیزود زحمت زیادی کشید و از خونیاگر که سپانسر این اپیزود پادکست علف هم بود شبکای اجتماعی پادکست علف رو دنبال کنید اگر نظری داشتید یا نقدی بود به پادکست برای ما بنویسید قطعا به ما کمک میکنه لینک همشون در توضیحات پادکست گذاشتم من مهدی هستم شما قسمت 16 هام پادکست علف رو در فروردین سال 1400 شنیدید تا قسمت بعدی عیدتون مبارک و این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتناید کست